آنگاه خورشید سرد شد و برکت از زمین ها و سبزه ها به صحراها ها خشکیدند و ماهیان به دریاها خوشکیدند و خاک مردگانش را زانپس پس به خود را شب در تمام پنجره های پرید رنگ مانند یک تصور مشکوک پیوسته در تراکم و تقیان بود و راه ها ادامه خود را در تیرگی گیره ها کردن. دیگر کسی به عشق نیندیشید دیگر کسی به فتح نیندیشید و هیچ کس دیگر به هیچ چیز نیندیشید در قارهای تنهایی بیهودگی به دنیا آمد خونبوی بنگ و افیون میداد، مرداب مردابهای الکل با ان بخارهای گس مسموم. امبوه بی تحرک روشن فکران را به جرف خیش کشیدن و موشهای موسی موزی او راق زرنگار کتب را در گنجه های جا جویدن. خرشید مرده بود، خورشید مرده بود و فردا در ذهن کودکان مفهوم گنگ گم شده ای داشت. آنها قرابت این لفظ کهنه را در مشق های خود، با لکه درشت سیاهی تصویر می بیچاره مردم دلمرده و تکید و مپوت در زیر بار شوم جسدهاشان از قربتی به قربت دیگر می رفتند و میل دردناک جنایت در دستهایشان متورم میشد. آنها غریق وحشت خود بودند و حس ترسناک گنهکاری عرواه کور و کودنشان را مفلوچ کرده بود شاید هنوز هم در پشت چشم های شده در عمق انجماد یک چیز نیم زنده مخشوش بر جای مانده بود که در تلاش بیرمقش می باور کند صداقت آواز آب را شاید شاید ولی چه خالی بیپایانی خورشید مرده بود و هیچ کس نمیدامی است که نام آن کبوتر غمگین از قلب ها گریفت